بسم الله الرحمن الرحیم لله رب الله مرگون شیخ خیلی صلاح بعد از این که این چند رساله رو در اصول مرو پرمودن که چند برد کردن چهار رساله رساله خودیت و مرنه و رساله برایت و اشتغال و رساله استثابیه یا و رساله در تعادل و یا تعاضب و بعد بعدها این رسائل رو با همدیگه مضموم کردن یا چسب بودن و به صورت یکی در بردن این کار توسط شایده ایشان شد در زمان خود ایشان هم با ارمان رساله چاپ شده چهار رساله و تغییراتی به در باز تخصیم موارد هم دارن مثلا در رساله کجه سلمادانه بعد از اینکه این حالات موشنم از نوشتری و زنان شنک و اشاره به مجای حصوف همونده فرمان به همه این و همه مرفت از همه جزوزاجی که این چهار سال رو همه زنگ میکردن به جایه به همه اول به چون که های چهپ شد مجبور شدید یک کمانهگی به این ساله های جادن. که بعد ماه مرفت در ساله ها بر حساب ناموزایی جرشایی به صورت رو اینجا که چون به برشد از مصدسانی به زن و مصدسالیس شک و اینها رو تندیم کردن ابن ها در اصل تدبینه و ساده این محصد بندی و فرمون حدث من این محصد چرا رو در اینجا این بود که این تقسیم بندی برده ها شد که آقایانی که برداشه به خواهده هم برده موسیقی برای دیگران مجموعه این بخش و رو در سه مقصد اصول جاده سه تا از مقصد عصور موضوع این چهار ساله شد یک مصدر با اونها رو و هموران که قرد زن زنی یک مصدر با اونها روز برمانه یک, رو یک شک رو بردن. یک محصد هم با ادوان یا تاروز ترچیب که رساله آخر شکل بود لذا در تنظیم وردی اصول بعد در شکل رزوانون داد دارواله چهار سه محصد به ترتیب از این چهار رسالی میشان در بودن که به حسد و حسد این کتاب در دیگر بودن کفایه شد محصد ششم هفتم هشتم سه محصد کتاب کفایه همین چهار به فقط در شکل به عنوان چهار ساله بود اینها رو تنظیم کردند. شد چهار سه محصد اصول این سه محصد پنج محصد هم از بحث مثلا عوامل یک مقصد دا یک مفهوم هم و منطور کنه و, و مغاز و یک پنج تو موارد موقع که در اول یا محصد موارد زهورات بایدن. که مجموع شد هشت مقصد یعنی این تنظیم بندی اصول بعد از مرحون و شیخ در مباحثی که در اصول قبضه های ما مطرح شد این شد پنج مقصدش در خود در مباحث زهورات شد مقدمش هم موضمش از زهورات شد در وضع معنی حرفی و مکشتر به اینجور شد پنج مقصدش در زهورات شد حالا از عوامه بگیریم تا بحث مهمان رو بگه. سه محصر هم به این از مجموعی سه چهاره سالی اضافه کردن یکی محصر بر برمارا یکی مبارا صورتو و یکی هم تعارض یا تعالضل ترجیح یا تعالضل ترجیب تا در مختلفی برش تو شاید مثلا تعارض بهتر باشه یا تعارض لحظه به تبدیل برزه یا تعارض مطلب محصر تعارض را هم اضافه که داده شد یعنی این اصل این روح تخصیم محفوظ مون مثل مرمومه های اسفانی شانسه ایشون پیشنه هایی زنید و یا ممارس تاروز منظر بشه به ممارس حجج و امارات تاروز و اصول هم اصول پس این مقصده هشتم، مقصده مستقی داره کنال. در مقدر دو تا بمونه اصول و ایکی هم حجج دیگه تاروزش جد به هر کدومش اگر تعارض روایات جزو بحث با جشو امارات بشه اگر تعارض و اصول جزو بحث اصول بشه این بحث تعارض مستقلن ما داشته باشید جزو ایکی از این دو بحث بشه این یه اجمالی بود که داده شده برای که مرموم در تقریم موارد الفاظ این مدان جان تقریب دارم و که روح بحث های اصولی شیعه تقریبا همینه. یعنی بحث رو که ما در اصول داشتیم این روح در اونها محفوظ مونه حالا فراسیم مباحث جهبال و ماجهبه دوم رو دو تا بکنند یا سه تا بکنن جهبه اول دو تا بکنن سه تا بکنند یا چهار تا یا پنج تا این روح تقسیم به اصطداع محفوظ مونه روح این ای ای و به طور تمیهی ما وقتی در اصول بحث میکنیم میبینیم که الان توی صحبت در میشین چیزی اینا فلسفه اصول مثلا داره از اگر مباحثی که اونا فلسفه اصولش ورن و وصول شدن بر اساس اصولش این مباحث خوبیه اینا سر به تدوین علم مستقل نداره اشکال ما این بود میاد نه چون موضوع وایده معنی نداره طبیعت علوم اعتباری چون صفه اهداف اون اه تغییر میده و صدها اهداف‌بند را دنبال بکنه خب ما نیازی داریم که یک مثاره به اینکه واقعاً رو باشه من با مسائل اصول بررسی بکنه خب خود خود اصول میدونیم <تصفح> چون که این میگه داره کلا علم, علم اصول در همین جا رسد این نیازی به یک علم مستقلی نیست اشکال سر طرح مسئله نیست اشکال سر اینکه آیا این رو علم مستقلی فرض کنیم یا میشه در عمق علم جابه چون از خبره که با مثلا چیزی خوش نمی میاد که در موضوع ما یعنی چی در جدیگه اونا رو جاده؟ این یک بحث بحث دیگه برای ما نیازهای رو تا اصول دارید. یه مقدارش در کتب احرسان هم آمده در کتب اصول صادق ما هم آمده مثلاً در این پسیم شما جایی برای مباهی که مسادر فشتی نداریم مسادر فشتی کجا بحثی شوشید اصولا این بحث در تمام اعتبار قانونی در بشر هست که منابع قانونگذاری چیه؟ مثلا تو مجلس هم برای قانونگذاری دولت تا چه حدی حق داره قانون‌گذاری بکنه؟ مثلا اگه شاه از نظام شاهی، شاهی چارتی داره، مثلا نظامی که حزب و حاکمیت جمهوری چارتی داره، مثلا رد و رد و چارتی داره، فرض داری ها تا چه حدی تا قانون تصریح بکنن، تا چه حد شوراهای شهر، شوراهای استان اله. این یه بحث این در قانونی. شناخت قانونگذار و حدود قانونگذاری منابع منابعه طبیعی بحثای اصولی اینه قانونیست جزو بحثای فرعینی حالان که این تقسیم بندی که هم برای شما ارز کردن تو اصول شیعه که پس این مثال واردش کتاب که باید کتاب استاد دیگرم جایی به نام منابع قانون و مثال تشریف ما ندارید لابل <تصفيق> این طروف منابع نیستن مثال این بحث در اصول عرض سنت بود مثلا خدا که از منادر تشریع پیغمبر حق تشریع پیغمبر تا چه حدیه تشریع امام تشریع خلیفه حاکم این جزء اجماع اگر فقها جمع شدن یک حکم تو تشریف شدن عوض بکنن مثلا جمع شدن به اتفاق کلمه تشریف شدن فعلا مثلا در ایام هایی دیگه قربانی نکنید تو فایده نداره مثلا عن سنت گفتن اگر پیش کردن کرد ها یا او طریق را اهل ما هل اندر گفتن چطور بکنن یه حکم رو بر این هم ماشن شد منابع تشریع و مصادر تشریع منابع قانون‌گذاری میشن این در عین حال خود بر سنت هم آمده در خصوص اصول شیعه هم تا مصط تا معالم هم آمده تا حتی بعد از معالمش خصوصی بعد از کجا از زبان شعر انصاری یعنی در حقیقت ای یک موازعه الفاظ بود شعر همترین که در رو داریم سه بخش که اصول عملیه اضافه کرد. شد این سه بخش به اون پنج بخش در کفایه مجموعه الفاظ پنج تا قرار داد چون در معالم نباتی رو جدا قرار ندارد گفت در الفاظ عوارل هیچ نباتی کفایت گفت که اول در عوارل محلومتی به سوم بان قرار دارد ترکیه از دو دو بخصول محلومتی دو زن چی سه قرار نگید قرار در از هم در پنج مقصد بر موارد موارد در از قرار سه خان که از زمانش اختضافه شد این سه بخش پنج مقصد اضافه شد نتیجه شد هشت که از کربید وقت منابع تشرید و مسادر تشرید من میگیم نهی که در جای مستقلن و لذا در موازد اصول متحصد شیعه ورد شیخ انسانی این بحث منابع تشریف کلن تحصول رو به مناسبات میپسن اجماع رو بردن چون شیعه قایل بود اجماع تریه به از خودش به نفس مصدر تشریف نیست اشاره کردن که سخنی ها بردن به نفسه ما به نفس مصدر تشریف بهلا، اجماع برسانه میگیم به از اجماع رو اهلسانه از میشه <تصالح> که داره میشه فقط I که صحبت درش رسول الله (ص) با هم میشه جن می‌کنند. لکن به شرطی اجماع اجماع نشه <تصالح> <تصالح> <تصالح> <تصالح> نه. اجماع این از در دانشگاه‌های دا حقوق تو حقوق می‌کنی جای اسلام این نیست. به بخش فریصتی بر بر از متاعز فقط از دیدگاه فلسفی بود باشه یا کلاب ما با زیزگاه عسیان بر داشته باشیم، رای ندارییم، چون در اصول نیاز میگیریم مثلا کتاب تا شزار با گذارید کهزیره با هم گذارید، اون احکام علامثال تص خود و بارمه تازه تاص خود به منبره که این الله امرکن بکرد. اون خودش بحتر ف خودش داره. و اگر ما مثلا، حیفت تکشیع نقردی که اسمش سنت و حیفت تکشیع علمه علیه السلام که اسمش سنت باز سنته اینها باید عذابیه اصولی و نسبت اینها همیگی مثلا میگن آلا باید قول رسولا میتونی مخصف کتاب بشیاد اینها توی اصول برن دیگه آیا سنت تخصیص کتاب میره سنت تقیر کتاب میره اجماع تخصیص کتاب میره آیا سنت ناصح کتاب میشه این تمام بحثا رو ما به مناسبت بحث نقد مقدارش عبوریم تمام این بحث ها اووردن توی موارد به مصادره کشید. پس ما در اصول ما موارد به کشید جاش رو از دست داد قدیشان اینم کلی شد از بعد شیخ انصاری تا زمان ما ناباورتی که مربوط میشه مصادر کشید. و, و رابطی اونها "اینا که یه جایگاه تقلیدی از نظر یه از مسائل در قرآن بیشتر در قرآن آمده در جایه اصولی مورد قرار می‌گیره" یه از نظر یعنی اصولی مورد بحث قرار می‌گیره "یه مقدار در کتاب خب یه این اصول بیاد حالا جایگاه اصلی خودش رو از دست دار در این بندی جدید بلدار جامعه می کنید و اضافه بر این بحثیشه بود البکه این بحث به صورت متفرقه هم در کتب اصولی و ما وحث سنت بود اما به نظر ما اینم باز جایگاه لازم خودش رو پیدا می و اون بحث بحث حقیقت اقبارات قانونی ترابط مورد اقبارات قانونی ترجیع بعض از اعتبارات بر اعتبارات دیگر و روابطی که بین خود اعتبارات قانونی هست ما دائم در این بحث تو فلسفه اصول فقه اینطور به اصول می‌ریم لذا در تعریفی که ما الان ارق از... این بحث هم باید اضافه بشه شما این چیز واقعا در مباحث قانونی دانش راهیومی هست یعنی بحث اوغلایت بحث صحیحه کی حقیقت اعتبارات قانونی چیه ترامت اونها چیه این واقعا جزء بحث‌های مقدمیه بود به نظر ما باید یه خاصی در او قرار داد و در این بحث شناخت اعتباس و قانونی مثل خیلی از حفاظ ما باید در دو محور بررسی بشه یکی محور عمومی قانونگذاری در پیش بشر یکی محور قانونگذاری در شرایع الهی و منها در شرایع پیهم بر ما در شریعت مقدس این که الان ادهی از مستشدین غیرتونهایی تواقعه میکنه ابوان اسلامی ارتباط نداره انسجام نداره این مقدارش مربوط به اینه یعنی اون روح قانونگذاری واسه نامه شهر داده بشه این شهر ندادن روح قانونگذاری منشأ کلی شبهات اعضا شده که شبهاتی که ذهن شما در مقابل مثلا دین مقدس یا مثلا کلی از علمای اهل سنت مثلا مناسبه شبهه که مثلا شیعه ما با مسئله جریان خیلی ضعیفه مثلا ال مفهومه خب اینو واقا توضیح که اوولند مثلا موارد صحری شناسی ما از چه ذاویه مبار شد؟ موارد قانونگذاری هم در دو محل باز بررسی قرار شد. حطور این تصوراتی که کردیم این شال درست باشه به جای این نشی رو که در این س غیر از بحث مقدمه که سافر هم که در و در مقدم شیوار باشه، خ به نظر ماعمده موارد دروا اصول به این صورت خواهد شد. بحث اول حقیقت اعتبارط قانونی، و بیان نسبت دین اونها و ترابط اونها بخش دوم مصادر خانون گذاری و تشریف در شهر مقدسه بخش سوم مباحثی که مربوط میشه به تنجز استلاحان ها توضیح میدن. که این هم به دو بخش اصول عملی و حجج و عمارات تخصیل میشه بخش سوم بحش همی بخشی که ما انا حجج و عمارات و حجج و عمارات ما به جای تدیر و حجج و عمارات مباحث تنجز اسمش و مرحله چهارم هم مابادس ظهورات مابود ظهورات من همینش گفتم اشراف موابد ظهورات در آخر ذکر میشه به اصطلاح این کلام و این سه بخش اول یعنی یک و دو و سه این سه بخشش که شما میتونید در تمام دنیا مطرح بکنید البته هم به عنوان قوانین بشری و, و هم به عنوان قوانین اسلامی چون هیچ سه بخش اختصاص به یک جاده معین نداره بخش 1 اختصاص به لغت عردی و لغت قرآن و لغت روایات و تعابیر ظهوراتی در زبان عرب هست و مثلا اون اعتبارت قانونی رو ممکنه ما فصل اون وجوب رو در تفسیر قانونی یک تفسیر واحدی بشدید اما چون مقام ظهورات از سه تعدیر، چهار تعدیر، پنج تعدیر ما وجود در بیارید. یکی از كده یکی از جمله خبری سیجلی ثلاثه یکی از جمله رسمی و زائد از موارد یکی از راج از حروف مثل المامین هند با کلمه امری وجود داره این مواز ظهورات میشه این محدود به لغت میشه دیگه این بحثه قانون جهانی نمیشه رفتی در دنیای قانون نداره این ممکن است ما وجود رو از انواع مختلف تعابیر قانون داشته و ممکن است حتی این تعابیر قانونی در نحوه وجود با هم تغییر میکنن دقت بکنید ممکن دیگه اینکه البشیر اثر داره به وجودش اگه چه جهه وجود حتما آثار دیگری داره مثلا میام ممکن میخواهم یاد adapters اینا قواعد خاص به به واسطه و که وارد ها البته بحث های بود که منظور شیخ فغور علمدار محترم در بحث شرقی از ترین در از خطور آمده که مرال از بخم بخم فعیلی مردم های کوی اشغال کردن و دنبال این بحث بود از که مرال از بخم بخم در مست آمده و به نظر نه رو که از شایده اشونان در حالی که نه رو کردن اونش میتونی که 32-34 تا رو میشنم الان این چیز مکام به مناسبت فعیلیت و بخم ما یه توضیحی چون متاسطفانه فعلیت در اصطلاحات از حال مترخیر ما یه مقدار نمفهوم شده چهار تا معنا برای فعلیت و مرحله فعیلیت مرحله فعیلیت و هفت از یه توضیحش در تصمیه اون بست که که و رفتی صحیح هم همینه یعنی انصافت مراد از فعیلی از وف مراد وف همین هم دوسته. و در تخصیم بندی حکم از کردیم حکمی بعد از مقام جلبه انشاء یک مرحله فعلیت داره مرحله تنجز داره مرحله مجسا در این تخصیم بندی این مناسبت کلمه فعلیت رو مختلف کردیم از کردیم فعیلیت اصطلاحات مختلفی داره مثل منوهای کوهی تبعند در و آینایی فعیلیت رو نمه فعیلیت موضوع می بونن. اصلا احنا اون حوک ما هست که نماز ظهر واجبه اما این حوک رو خیلی نمیذنه این شایع میذنه از آن پیش شد زوال شد اون وقت حوک خیلی میشه این یه بی اصطلاح اصطلاح مرحوم نائینی در پیگه هر چقدر اصطلاح خیلی فنی میشه شاید اصطلاح حقه به استعمال صدا اما سر اصطلاح در واقع نمی تونه لا مشاهده به اصطلاح لكن این خوب نیست در بواسطه قانونی فعیلیت رو این من مضمون گرفته این فعیلیت ترسیدات تو مقام این به درد تخصیل قانونی این فعیلیتی که عبون نایمی قدس الله نصر یک فعیلیت هم حال که ظاهر کفایت و شاید شایدیشون از بروجردی بکنید آز بروجردی هم هم همین را برده و ظاهرش احتمال فعیلی مراد بکنه فعیلی در مقابل این شایی سر یا عواملی که برای تحکم و تهدید و ذوق نکند این گفت اینا فعلی نیستن ان شاء فعلی اینطور تصویر کنه ان به الله حکم و زن میشه ببین ان شاء الله حکم‌ها میشه انشایی این, این, این تصویر بود که در شفایا آمده و عبارات برنمای پروژه هم خود این وران شاگردی ان مطلب رو به این حکم اختیاری حکم انشائی و حکم فعلی و حکم به اصطلاح یک یکی که شنیدید چهار مرتبه عدالت این, این تقسیمی رو که مردم مضمون ساطقه داره خیلی تقسیم فنی و درست ببینید قابل ردی نیست اشکالاتی هم از جای خوبی هستند برای این تقسیم اشکالاتی هم از مضمون ابوریجوی و انصافاً وارد هستند مثلا ما حکم اختیاری نداره مبادرت اختیاری که ظاهرا در حوکمی رخ داده. حکم اول جهل در یا مراحل به فرض مبادی حکم یا مراحل متأخر ازش که توزیع داده شد این هم تصویر دوم بود که نرف یک تفصیل سومی هم از ما رو و از به این به ما مرحله کلیت گفت. مرحله کردن یا ارسال رسل و انزال کتب. یعنی حکم بعد از جهلش برای این که مرحله حکم به, به درست بگیره و واقعا باعث روزار شده باشید احتمال هست شد مراد جدیه ساکی فرام این بود رو بد کردید مراد جدیشی بود اون مرحله ارسال رسول به ارسال کتبه یعنی حکم بیاد در وساله یا به استداه دیگر ما جای دیگر اینو مفصله ارز فیلم گفتیم حکم بر مواقع یک مرحله دیگری داره با اون که به مکلف برسه رسوندن در رسوندن یعنی در به زمینه رسوندن مکلف دو نوع به اصطلاح کار هست یک کار از طرف قانونگذار و مشرب میشه با اون رسانی کردن در رسانه قرار دادن یا کتاب فلسازن یا به باز و یکی هم از طرف مکلث و به اصطلاح به قول شهرن و سمواضی انجام میره در شخص انجامیه و اون مسئله بحث و و بنابر این مرحله رو اصطلاحاً شروعش وظیفه هر دو یعنی وظیفه قانونگذار و وظیفه مکلف این است که خودشون رو به حد معردیت دراتون این اصطلاح اینجوریه هم قانونگذار قانون رو قانون به معردیت بیاره هم مکلف یک حرکتی بکنه به حد معردیت تا حد معرضیت و مخالفت حرکه كده حد معارضیت سوال بکنه زنگ میزنه روزنامه بکنه به طرفین به استاندار مراجعه کنه به شهردار مراجعه کنه این مراد از به حساب یک معارضیت رو از طرف آموزار یک حد معارضیت هم از طرف مکلفه که اسلام فحثه و البته ما خیلی روشن و خیلی واضحه که خواهد اون ان شاء الله تعالی که فحث در شواب موضوعی لازم نیست اونجا کردن. در تخفی روشن بود که به طور تشخیص وجد کرد چون بعد از شواهد چون اخرین در در شواهد موضوعی معرضیت می‌مدانه خب خلاصه در شواهد حکمیه معرضیت مطرحه چون شارح میگه می این کار حرام میکنه اون به یک حد معرضیت برسونه شما یک حد معرضیت رو برسونید اما اینکه این بول حثیانه این این نه این شارع بدی نداره کاروانو بزاره هیست لذا شما هم وزیفهی نداری که تا معرضیت حرکت بکنی نقطه برای معرضیت نیست نقطه اصاسی فرس رسوندن برد معرضیت و این وزیفه مکنده در جایی که وزیفه شاره معرضی دو تا وزیفه از یک از طرف شاره این از طرف مکنده هم مکنده هست باید حرکت بکنی تا معرضیت شاره هم باید حرکت تا معرضیت و ما کنم معرض ببیند هست حتما برای مراد این مراده از و هوک این مرحله و از که این هوک تو این مرحله منشأ احکام جدالی است. موضوع احکام جدالی اگر شما به این هوک در مرحله دوم میشه تنظیم، از یه مرحله فعیله، یه مرحله تنظیم، بعد دیگه تنظیم، سریع یا ازشونه. اون مرحله آخره. شاید هم مراده نعم البلاغه ان الله امر بعنام ونها عن اشو سكته عن اشو سکته مراد به مرحله عذیه نرسمه اگرم بقی بوده بیان نکرده خلاصه ده رسولها و سکته عن اشو خلاصه ده اهل بیت خدا سکوت کرده اون احکام بیان نکرد تو ممکنه در مقام که چیزی نگذره ممکنه جایی که در مرحله به نرسمه و هرها این تأثیری داره در اینکه مراد جدی اینه برای اون ما آمدیم در مناسبت این بحث حالا این بحثی که را منعز کردیم گفتیم به جای بحث غجج و امارات ما به این بحث تنجز قرار بدیم پس یک بحث در حقیقت اعتبارات قانونی و یا نسبت اونها یه بحث در مساجر تشریف و منابع قانون گذاری و منابعی که اینها با هم دارن یه بحث هم مرحله تنجز قوانین اصلا قانون چگونه به مرحله تنجز می میرسه یا این اصدار مراد من از تنجّس اینجا فعلیه چطور به مرحله فعلیت میرسه اخوایی چطور معنا یعنی اون قانون منجّز فعلی چگونه به مرحله تنجّس مرحله تنجّس مرحله وصول اون قانون فعلی به مکلفه رابطه مکلف با اون پیدا برقرار این اسمش مرحله ترفّس و لذا و یک اشتباهی است که دهنجا پی آمده تأیید میشه ببینید ما الان در اصول خود و اصول خودمون چه ما که اهل سنت حجته را بدون منابع تشریعی به کار نمی‌بریم گاری هم مرحله تنجیز به کار می‌بریم و هر دو درسته اصلا اینکه اجماع حجتی یا حجتی نیست کتاب حجتی یا حجتی این مراد منابع تشریعی خبر واحد حجتی یا حجتی نیست ظن نفسی حجتی یا نه یعنی منجز هست یا نه این مرحله تنجیزه پس این دو مرحب به اصطلاح حجت با این تخصیم بندی امان یه اشتباه نمیشه رایلا در واقع باز دیگه دو برس داری در حصول یه برس درانه حجت تخصیم سبودی یه برس در حجت اصبادی حالا میتونید سوییم به جای این دو برس این سوار کنیم. یه برس در منابع تشریف و من مستازر تشریف یه برس در مرحله تنزجز و کیفی رزنزجز در تفایی د در به جای این بحثی که مرحوم شیخ انسالی بوده و بعدی این شکل در آمده موارد حجر و امارات یکی و اصول عملی یکی نه اینا هر دو یکی بشن. چون هر دو در مرحله تنجد هست. با استثباه هم میشه او کسی که قاله استثباه بزرد در شبات و اونم برای تنجد می‌دونه. کسی که میگه احتیاط بکنین در شبات و حکمیه اونم تنجده فرم نمکنه خبر واقعا منجزونه منجزیشو هم به لحاظ نقطه تردد فرد نمیذاره. هر که از جایات دیگری ما اینجور فرد گذاشتیم. گفتی تو مرحله تنجض رخ نمیشه من میشه با دو برنامه میگم در فرغ تو مرحله تنجض اصولاً مرحله تنجض رو دو قسم بکن. خوب دقیق که اینا داره جای گفته این روش فکر ادراکات انتقایی ما چون تنجز است بر ادراک، یعنی انتقاش صورت در زید اینشالله فراز وزید چون این ممکن است که دیگه تنجز انتقاش صورت نمی ما آمده گفتیم حسلت اساسی اساسیه همینه به دون تنجز نمیشه چرا؟ اینگه می چون شما در امور تکوینی فیزیکی شیمیایی شما تنجز ندارید جید. یک پدیده یک تکیمی به خودش موجوده شما ایل پیدا بکنید ایل پیدا نکنید و رضا وزیحه شماست که فرض بکنید وزیحه شماست که تیگیری بکنید آزمایش های متعدد انجام زدید تا ببین محلب برنزید بسیده که در قانونی این نیست در اعتباس قانونی تابه به انتقاش صورت یعنی اگر صورتی در ذهن شما آمد در اون صورت در تکلیف برشون منجز میشه و این صورت هم صغرا و کبرا یک از متاضر پشکی باشه دو ثابت بشه مثلا این خمر یعنی یک دلیل بیازه بگه خمر دو اینکه شما این صورت بشه که این خمره اگر این دو صورت آمد رو برشت فکریف برشونی رو برشت بیاد اما اگر آن شوقتی نه ما اصلا در قوانین تنجز میخواییم مثلا اعتماعات ما همه مثلا ا چطور تو چون باید سکتیم این پسط رو برای سری بودیم؟ اصلا قانون تنجز نمیخواد ولی دقت کردیم؟ ولی که مسائل تنجز امتداراً باید بحث بکنیم بدیم بحثوی شهر و زن و شخص باید بحث بگنیم که آیا اعتبارت بانونی از چنخ قوانین فیزیکی که تنجز نمیخواهن؟ وجود باقیش کافیه یا نه اینها تنجز نمیخواهن؟ اگه تنجّس خواستن، ما توضیح دادیم که تنجّس تابع انقوای صورت اون وقتی رو توضیح میدیم این انقوای صورت به دو صورت به دو صورت اساسی تعریف میشه. یک، صورتی که ادراکات صوری ذهنی شما که جنبه انتبا از یک واقعیت داره. این میان جنبه جذاب ماست. دو، صورتی ذهنیه شما که انتبا از واقع ادراکات ادراکی خود شماست. خودتون درست می‌گویید. اسم به اصول عملی پس اون ادراکات ذهنی شما اون صورت ذهنی شما چه در مرحله کبراف اطلاح قانونیش و چه در مرحله تشریف مثلا میگیم خانومی که انقضایدن نهید شده بازنگرده یه حالت یا به اصلاح ببینید این صورت ادگاهی شماست یعنی شما میگید ما در شریعت گرشیم حالا ما رگایت که جواب. مراز من در اسلامی شون که به درده همون حکم استثاب میکنی که دیگه اینکه به همون حکم استثاب که غالی ما بر حرمت برمت پیدا نکردیم میگیم چون یقین یعنی به بر حرمت برسرشیم همون باقیه ببینیم اون صورت ذهنی رو شما با استثاب افضاق میکنیم این از اینشوی استثاب در شما در حکمیه. یا بگید این ماهیه سابقاً خمه بود حالا تمش اول شده شکلش اول صده یکی رو سرکه بوده باشه میگن نه اون صورت خمری که در زمین شما بود هنوز باقیه پس کار استثاغ این یا در مقام حق یا در مقام کشید برای شما صورت درست میکنه سورت که بار استثاغ رو این ماهیه سابقاً خمه بود بار استثاغ بود. حالا خمره پس بک مرکیت میشه ای چید؟ اینه به نظر من به جایی دست و اصول دو تا رو قرار دو یکی حجز و امارات یکی اصول عملیه اینا رو با هم دیگه جمع بکنن بذارن مثلا علمه پس و در تنجز احکان در تنجز اعتبارات قانونی اعتبار قانونی چی جوری پیدا میکنه. اونجا شعر دادن که ارتباط قانونی فرقش با قوانین فیزیکی، شیمیایی، طبیعی و نجومی فرقش که اونها ثابته واقع این بشری که ما بر اونها را کشف بکنند تا به اونها قضه برسند اما در ارتباط قانونی ثابه‌ی انتباار شرطه ما در با موازنه ترجح این مواردی که الان قرار به اسم قطع و رد و شک و،, و،, و تمام اینها در حقیقت برگشت اون صورت ذهنی رو محاید تحلیل بکنه برای که چه صورت ذهنی که موجب به تنجاز میشه این صورت ذهنی هم از کاری اول یک تخصیم بلیه کلی میشه بخش اول ادراکات انتباهی انسان بخش دوم ادراکات ارجاعی انسان ادراکات انتباهی رو میزنیم به نام بحث حجر و امارات ادراکات اجباری را ذیل بحث اصول امریه مثلا اختیار شما یک خط خون توی که از این دو تا کاغذ هست. خب یک خط خون توی کاغذ. اما شما می‌بینید از هر دو این هر دو ابلاغ نفس شما. یکی واقعه، دو تای ابلاغ نفس بده. و نظام که اثر ما به یک نحوه بحث وکلام نشون به کلمه بیه راستبینیه تو گفتید کجا روح و توضیح بدید ولی از الان بین علمای ما از زمان شیخ آمدن در تقسیم بندی قانونی حالات رو در نظر گرفتند امایت و نه از زن از شر بعد از اونها گفتن تقسیم بکنید بکنید نه شلاسی تقسیم بعد به نظر ما اگر این ترکیبش فنی نیست، اگر این قانونی نیست، این نحوه ارتباط در در سر در استانداردهای علمی و کاره آکادمیک جهان نیست، و چه استانداردی نیست. مثلاً از اون راه کودون وارد نکنیم. از اون راه فنی اگه بخوام کودون وارد بیم، باید خنجر و حرفه که و جور، به اصطلاح اطلاعی شود خنجر جور کاری به تفت و زن و شک و حالای و, و این حرف نداشته باشیم این بحثا نخواه، خواهد آمان پایین هایی متعرض میشیم چون صورت رو میکنیم یکی از جاید اون صورت اینه که باید صورت خیلی واضعه اسم شیل این خیلی مثلا اصلا یک روی رن باید ممکن است از, از این زاویه ما اون رو بررسی بکنیم اما اصل دید ما در حقیقت بحث تنجزه که مرحله بعد از مرحله فعیلیتیه احکام زارهی اگر قابل کشیم در تنجز توی امارات احکام زارهی تو امارات رو اگر تو امارات قابل کشیم فقط تو اصول بخش از اصول بیان. اینا همه بعد تاقیق میشه چیزی نیست که مستقل بشه پس ما بیا این به جای این بحث تهاجم هم در جای هر کجا محدر بشه هم توجرمای سواني گردد تهاجم اصول در جای اصول تهاجم در جای جناوی احتیاج در که مستقبل بیاریم مخصوصا که ما در موارد تهاجم معتقد هستیم به جای این علاج و این مساله علاج اگر اینکه ما که واقعی وجود خبره وجه تعبدی خبر نیست که مشکل تهاجم زمان پیشیاد بر مؤتلف که روایات ما بیا روایاتی که اهل سنت درک کردن اینا همه تقریبا از 80 تا نرد ازشون قابل شناسایی این ریشال سایشی هستند یعنی قبل از اینجا به تعارض ریشال دو دین پیش بیاد حالا من چه علوم اعتبار تعیین دبران ان میومیه و تقریبا دبران المیه میشه دیگه بحث نه چیزی بحث ریشه نمیاد به اعتبار اجواز ما میگیم ریشاهای تعارض رو بشناسیم. لذا در مقابل تاروز خیلی کمر خم نمی کنیم که برگرین در مرجعات تعبودی ما هیچ مونه مرجعه تعبودی رو قائل نیستیم در تاروز اصلا تعبود غایی نیستیم که مرجعهات تعبودی این حدیث رو مرم نهنده در صرف این ترجیح نداردن در ما اشتباه پیش آمده اصلا قدم های اصلا ما این کار نمی کردن این کار کردن بعد از آمدن به اصلا مرجعه که اهل سنت در اصول دوباره ظاهرن مرجعه ها تویده نه روحات رو برای منظر رو رفتی معامل ترجیح نداره اصلا ناظر معامل ترجیم توضیح های در دست تاروز در دوری اول متعرض شده اگر در اینجا متعرض میشه خلاتیه بعد این روشن بشه پس این مطلب که آقای خویی فرمیدن خب اهم از این این ایشان از فر اشکالی که به کفایه جلن. اشکال آرکوی مطلب نیست، اشکال آرکوی که تحصیل صاحب برای این خیلی فیلی راست دارم این شایه را بوده گردم فیلی هم این صاحبه تحصیل خوب نیزد کفایه و از که شایه دیگر هم اشکال تنسته صاحب کفایی را دارد صاحبه این چهار یک تضمین درستی نیست نه بی نقصه درسته و نه وا مناظره با اعتبار خوان مناسب نیست با شونه اعتبار قانونی کلی تناسب نداره پس بنابراین به جای این بحث چون ماوارش نیست محل مراد مرحل مرحله کیتی مرحل به جای این نحوه بحثی که الان مطرح شده به نظر ما صحیح‌تر و شلیح‌تر صحیح صحیح این بود که این رو به عنوان یک بحث مستقل در اصول بیاری هل من حساب سالت بازن فی مرحله تنجیزه به اعتبارات مرحله تنجیز رو وقت درسی بکنی و این اصول رو ارزیابی بکنی امارات رو ارزیابی بکنی هم در مرحله شناس احکام و تنجیز احکام هم در مرحله موضوعات خارجی مثلا مشهور علام به علمان ما این طور رو سالتوی می‌فرم در حدود کن خبر وارده اما در موضوعات به شادیه بشه، به میشه، عادواید نمیشه. مگر گوشه‌گو کافیه دارویی؟ ببین ما هم در حکایت بین حدود موضوع اینکه هم در یا این مش شخص مشتری یعنی از دو دوشارت داده یکی به دنای تأکید نمی‌کنه. اما اینجا کل از بین ما در موضوعات خبر ما در اساس حجته این بحث می گره همین واسطه ایشون اطلاعات رو زیاد ذکر کرد. وقتی اومید منجزهات رو باعث کردیم ممکن است یک چیز در شواهد حکمی منجز باشه در ساخت موضوعی نباشه. طرز پس همین راه هر که بحثی این صورته. همه علمی و هم دقیقه. اون وقت مواردی مثل بحث بحث اون در لابلای ما خیلی اونطوری نیست که ما رو محور خطاب قرار رو قرار و سه درست سال قرار یک درست خاکی به همین تبدیلی درستان سو اسطح که نیداره که این شده فرده ارزمان الله